بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و و احترام دارم خدمت همه عدیسان با کسب کس اجازه از نظر مگرامل محترم سازمان بدون تبریک عرض میکنم اعیاد گذشته رو انشالا که همیشه سالم و سلامت بشی تبریک عرض میکنم روز خبرنگارو و تشکر میکنم از همه بزرگواران که در این مدت بحث تلارسانی و پوشش رویدادهای شهرستان چابهار و اطراف چابهار رو دارند چه پیشرفت ها چه موضوعات مطالبه گری رو که دنبال می‌کنند به دلیل محدودیت‌های این زمان برنامه رو یه مقداری خلاصه و فشرده برنامه‌ریزی کردیم که هم مدت جلسه طولانی نشه و هم اینی که بتونیم به برنامه های دیگه دیگه‌ای هم که دوستان برنامه دارن برسیم. من زیاد طولانی نمی‌کنم صحبت رو فقط تشکر می‌کنم از بزرگواران به سهم خودم به عنوان راقابتومی سازمان جهت همه همکاری ها و همراهی هایی که داشتین در بحث اطلاع رسانی اتفاقات و رویداد ها آی دکتر ما برنامه رو فرم جلسه رسمی و علاقه بخواییم بگیم تبدیل به این بکنیم که نشستی برگزار بشه بحث پرس روی خبری باشه نیست صرفا خوسته تشکر بکنیم از زحمات این بزرگواران تعدادی از دوستان حالا تماس گرفتن یک مختصر کسالتی دارن حالا گفتن کسالت داریم ولی خدماتشون اینا کسالت دارن بچهای کناراک یک نفر رو به نمایندگی از خدمتشون هستیم آیه کریمی گفتند که یک مختصر که سالتی رو دارن نمیتونن بیان و بقیه دوستان هم آیا راهبر که مرخصی هستن دوستان دیگه که خدمتشون هست ما ما تشکر می میکنم از بزرگواران همه انشالله سعی میکنیم جلسه حالا توی طولانی رو نداشته باشه شما فکر کنم بعدشی برنامه ای رو دارین ما هم برنامه رویزی ها رو به شکلی داریم که انشالله بتونیم ذر وقت همون بکنیم خدمت شما هستانی دو قرار شد من نگم دوستان سوالی دو. یا من یه تبریک بگم بسم الله الرحمن الرحیم ارزالسلام و بیره هم دارم خدمت امکاران خوبم در عرصه رسانه و خبر تبریک میگم روز خبرنگار و خدمت همه شما و کرامی میداریم یاد و خاطر شاهدای خبر و رسانه خصوصا شهید سالمی عزیز رو فکر کنم هر سال مراسم رو شما دارید آقای سیدی بله. به نظر میاد حالا انشاءالله که به خاطر کرونا است امسال تعداد خیلی کمتر شده به هر دلیلی. البته لیست همون لیسته ولی خوبه خب. دوستان کنارک یه نفر نامندگی اومده در هر صورت که انشاءالله که حضور دوستان پررنگ و سبز و مندگار باشه در چا بهار چند تا نکته رو من خدمت هزان عرض می کنم و بعد علاق مندم که بیشتر بشنمم از شما ابل اینکه واقعا تشکر و سفاس گذاری می کنم در یک سال گذشته از حال حضور دوستان با همه گرفتاری ها و فراز و فرود هایی که بوده حد اکثر استفاده رو داشتیم و روزهای سختی هم بر ما گذشت از سیل و از بحران هایی که بر حال در کشور داشتیم و همینطور مجدد کرونا شروع شد و باز دوباره بر حال باز هم در اید دیگری رو در منطقه داشتیم. با همه این گرفتاری ها و فراز و فرود ها از همیشه در کنار ما بودن و همراه و یاری گخت از این بابت تشکر میکنم خیلی، من رو سپاس گذارم از همه شما بر حسب وظیفه و خب به هر سنتی که در این ایام در این دوره در سازمان وجود داشته به هر گرد هم اومدیم تا گپ گف و گفتی داشته باشیم منتظر روال بر این بوده همیشه فکر می‌کنم سال قبل تلاش کردیم این سنت شکنی رو بکنیم نشد گفتیم آقا حرف خبری و کار حرفه ای امروز نکنید از خودتون بگید و بحرار پراکنده بگید ما برای کار خبری و نشست و گفتوگوهای حرفه ای شما در طول سال زحمت بیدیم به شما این که مال شما هست این رو کار رو نکنید کار حرفه ای نکنید استراحت بکنید بله ولی در هر صورت هر اونطوری که شما صلاح میدونید ما خدمت شما هستیم ما از باب وظیفه و تعهد و اینکه بگیم که بر هر حال حواسمون به شما هست مراقبت می میکنیم و مراقب هستیم و بر هر قدردان زحمات و تلاش های شما هستیم در واقع امروز رو خدمت شما هستیم این که حالا به حال چه سبکی رو و چه مدلی رو شما دوست دارید که از این روزی که به هر به مناسبت برای شما پیش بینی شده استفاده بکنه این رو در اختیار خودتون بذاریم ترجیح من اینه که کار در واقع ایتون امروز انجام ندید کار خارج از فضای ای دوستانه گپ گف و گفتی مسئله ای موضوعی دردغه‌ای یا حتی پیشنهادی در ارتباط با موضوعات مختلفی که به دلیل صلاح میدونید رو خدمت شما باشه. منم دیگه قرار شد خیلی حرف نظرم بیشتر شنونده باشه. از هر طرفی هم که میخواهید شروع کنید از همین ور بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و دارم خدمت مدیر آمد منطقه آزاد شابه جناب یعنی جنوی دکتر کردی و همکاران محترم روز خبرنگار رو به همه عزیزان تبریک کرد میکنم یاد با خاطره شهید سارمی و شهید خزایی رو گرامی میدارم آی دکتر من فقط زیاد وقت گیرم سه سوال دارم یکی اینکه که به مناسوط روز خبرنگار قرار بود ساختمانی در اختیار خبرنگاران از سوی منطقه آزاد داده بشه متاسفانه متاسفان با گذشته دو سال فعلا کار عملی نشده دو چه اقدامی برای رسانه شهرستان شابهار از سوی منطقه آزاد در واقع شده سه با توجه به الهام؟ چه اقدامی برای رسانه یعنی در حوزه رسانه منطقه آزاد چه اقدامی انجام داده؟ و بوطاوجی به الهام شهر و بندر چابهار به منطقه آزاد آیا منطقه آزاد در این زمینه برای رسانه برنامه‌ای پیش بینی کرده؟ آیا اصلا در منطقه آزاد مسئولیتی هستش که در نگاهی یا یه برنامهی برای رسانه داشته باشه باید توجه به ظرفیت ها فرصت هایی که در شهرستان چابهاره هست و آیا برنامه پیش می نشده از طرف منطقه آزاد ممنون و منشکل رادیسی قرار شد بریم آیا رادیسی قرار من خوام بذارم آفتار بیشتر بر و... دوباره بهت وقت میدی من هم بگو اگه دوباره چیز یاد میدیم خب شما گفتید که بیشتر از خودمون بگیم آنه من هم یک سآل و مال و اینا نمیپرسم خیلی منچکل هم بلکه شما بکنم میشنستیم لازم ایست شما از خودتو بگیم نه بخواییم که بگیم که دوستان بدونم را جلسید خود نه خدا شما گفتید دیگه این منش را شما حال به جلسه که داشتید معمولا منش رئ من, من فقط جهت استهزار گفتم که وقت رو از دست ندید گفتم من شما رو این خود شما برده در <تصفح> دوستان شاید بلاخره میخویم یک گذارش عمل کرده خیلی شما بدون آیا ما الان در حال حاضر دفتر منطقه سواد مکران تسلیم رو داریم این دفتر علاوه بر چاوهار، کنارک، دشتیاری، قصرغن، نیکشف، فنوچ ارز بزرگ شما که سیب و سوران سراوان مهرستان کل جنوب بلوچستان رو ما پوشش خبری میدیم تقریبا 10 نفر الان دارن با ما همکاری میکنن علاوه بر دفتر منطقه سواحل مکران مجمع خبری معیار رو داریم ما توی مجمع خبری معیار جت کار جدیدی که اومدیم کردیم در واقع طرحمونی هست که ما نمیایم موقعی که یک اتفاق بیفته یه جایی یا مثلا فرضاً سیلی بیاد یا اتفاق بیفته با مسئول و منطقه صحبت نمیکنیم با معتمدین و منطقه صحبت کردیم در واقع اسم مجمع خبری هم صدای فعالین فرهنگی اجتماعی و به حساب رسانه‌ای بلوچستان هست اقتصادی رسانی بلوچستان هست دعوت میکنیم از دفتر ما بازدید بکنید رو بفرمایید بله اصلا خورد جدا هست آ با مجموعی تسنیم هست ولی چون من تیم سازی رو تسنیم انجام دادم این تیم رو همونجا هم بردم بعد عرض بزرگ شما خود تصمیم رو اوندتاً به عنوان خبرگزاری منتقد میشناسن، همه هم, هم میشناسن ولی آیه دکتر، دو... آیه قولیزاد همون دخیق گفتن، ما اگر نقدی هم کنیم نقد ای هست تسنیم یعنی تصمیم منتقد نیست که گفتم منتقد خود نه، <تصفح> کلن به عنوان خبرگزاری منتقد دولت بین افکار دولت عمومی دولت شما ولی بله. شما که بله به گفتیم دیگه <تصفح> ولی خودت نظر کرونا دیدید دیگه ما تمام قد پای کار دولت بودیم و واجی قلی زاده گفتن تو این منطقه خودمون ما بالاخره از منطقه آزاد چون به شما باور داشتیم از همون ابتدا از همون ابتدا هم خبرهای ما الان بیش از 2000 تا خبر از شما کار کردیم خبرهای ظرفیتی حالا اگر نقدی هم از شما شده نقدایی بوده که در راستای نقد ناصهانی بوده حالا فرزن یه بار دوباره نقدی شده آقا هواپیمای اونجوری شد نمیدونم اون اینجوری شد این در راستای اون نقد ناسانه بوده و در واقع هیچ منطقه آزادیم دکتر خودتون اون دفعه گفتم خدمتتون میتونید تحقیق میکنید مناطق آزاد دیگه خب تسلیماشون اینجوری کار نمیکنن دیگه چون منطقه آزاد یه بنگاه نیمه دولتی هست. مثلا به ما انتقاد میشه که آقا در مورد تجهیزات استراتژیک بندر چرا را이가 گزارش کار تجهیزات استراتژیک دکتر متعلق به چاواها و بات چاوا بmونه اگر بندرم تکسیر میدیم ما منتشر میکنین کار نیست چون آجا گزارشادر اردن اتش کردن ما از خبر انتقادی ناریم. تا چه روزی متعلق بندر هست و بندر بود بمونه همچنان واحد های تورییدی شما باید پای کار باشن نمی دونم اون گلخانه تون باید انجام بشه یعنی منظور به اینه که ما اگر نقدی هم کردیم در کنارش ها رو هم گفتیم در کنارش از شما مایاس کردیم که این به حساب تو تسلیم روتین هست و در واقع همین دیگه من خیلی وقت دوستان نمیگیرم فقط گفتید که از خودمون بگید منم از خودمو گفتم خیلی مشکل خواسته های کاسته های سنفی رسانه کاسته سنفی رسانم که حالا ما به شما یه چیزی میگیم شما هی پشت گوش میندازید هی واش گوش که نیمه منو یه اینقدر وقت نمیدارم اینجوری شد اونجوری شد اون دیگه آ کریم دادی گفتن دیگه کردید شما بالاخره خودمون. دیگر همه مرد مسائلی دوست دارند. فضا او نمی‌نامند. چیز این بار اون بار. محدودیت ما رفتیم به فضا رو ببینیم اونجا محدودیت وجود داشت واقعا به فکری فضا هستیم. یعنی چندین جا رو رفتیم دیدیم که. یه خلاصه یه سال دیگه این تو بیشتری یه نیزی مامدیم ولی چقدر؟ آقای مصه ازی مامد. آقای ازی نکه استاد داره کورس مالزی ترجمه کرده. ترجمه قبل از رفتن اون کورس کرد. ما تو فرمانداری هم چون فرماندار سال قبلش قول داده بود که با تو مسکن قول رو انشاءالله یک تا یک سال اوکی بیتونم متاسمان اونم اوکی نشده بود با تو این جلسه گفتیم ما بودار شما اون رو مسکن نده دیگه جا ده لفته هم قول دادیم باش چشم بس با سلام و خستین آماشد خدمت همکارانه عزیز وقتتون رو زیاد نمیگیره من از دکتر میخوام که آیا سازمان صدا سیما در شهرستان چاوار بودنش مفیده یا نه؟ و اگر مفیده چون که تقریبا دو سه سال پیش, دو سال پیش ما برای جانمایی زمین سازمان صدا سیما و برای امکاناتش یه برستی شد و یک تاوداتی قرار بود بین صدا سیما و سازمان متقاضات بشه متاسفان هنوز خبری نیست یا شاید هم خبری هست ما در جریان نیستیم و قرار قبول دفتر خبر صدا سیما در شعبار افتسا بشه چندین مرحله به یک ماه یک ماه یک ماه گذشت دیگه فراموش شد و من هم خیلی تاکید دارم رو ساماندهی خبرنگاران شرعستان شعبار چون که الان ما هرچی خبرنگار داریم الان ما آدم میشناهتم تا و هشتاد تا گروه زده خودش رو گذاشته خبرنگار متاسفان هیچکی به... یعنی نه جوابوشو نه پیشو میگیره میگه آقا بذار زا ولی من خواهشم اینه که به فرمانداری و سازمان و و بنادر یه تعمیداتی رو در نظر بگیرن در رابطه به سامانده یا به مشخص بشه کسی که فعال مجازی، فعال اجتماعی، فعال سیاسی مشخص بشه و یک سنفی در نظر گرفته بشه که یعنی خبر تایید رو از این دوستان بتونیم ما بشنمیم و ببینیم و حتما آی دکتر اگر امکانش هست راضی بودنیتون در رابطه با صدا سیما و روند کارش روند دفتر خبر صدا رو یه خورده توضیح بیدید دلیلش چیه؟ دلیلش چیه که ما قابلیت شده در شهرسان چاوار داریم و شما امکانات و زمین و تجیداتشو فراهم کردید چرا را نمیفته؟ این یه درداغه بزرگیه و شهرستان چابار قابلیت بسیار زیادی در رابطه با سیما و صدا داره. آقا میگن اول صدا باشه. ما صدا که داریم در منطقه آزاد. داری پخش میشه ولی الان خیلی خوب هم میشه که سیما رو هم داشته باشیم و خواهش میکنم یه خورده یعنی اگر این اتفاق قبل از 1400 بیفته قبل از شما به خود خودتون بیفته یک حرکت خیلی بزرگ و ماندگاری خواهد شد چون که شهرستان دیگه در ایستان و روشستان به شدت پیگیر این مسئله هستند به شدت دارن پیگیری میکنند که این سمیه رو از ما بگیرند من خدمت دارابی و ریست دفترشون تقریبا الان در فرودگاه یعنی در ریست دفترهای دارابی رو فروژا رسوندن و کاملا تأکید کردن که من این صحبت رو با شما بکنم و جوابش رو بگیرم که ببینیم چه اتفاقاتی می در رابطه مرسی ممنونم وطنم میهنم ایران من من بلوچم تو بلوچستان من شروع کنم گالای با که ناما من اولان که مازرتر لوت هم مگستر بالوچی گپ کنم بازیا زیروستان اندروستان چپش ماي روشا می دون که خبرنگار روشا مطیع مکاری عزیزا مبارک بادیا و خستن باشیدام گوشام پن بازه گپ پن است که من هرچ پردازیانی که هر جا فلم سازی هم خبرنگاریا موجری ا بصرات سازی فقط یک جوستی، یک سوالی که این فرنگ سرا که استی ما چم بستگان پیشیان کدی آماده بی و کدی افتتاوی که وا وا زیاد بده جواب بده دیگه سوال خاصی نه ایووت ایووت بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم خدمت همکارای عزیز این روز خوب رو تبریک میگم به دوستان تشکر میکنم از آقای یوسفی که دوستان رو دعوت کردن به جلسه عرف خاصی ندارم باز تبریک میگم این روز خوب رو مرسی بسم الله الرحمن الرحیم فرز سلام و ادب در خدمت همکاران گرامی گرامی می‌داریم یاد و خاطر شهدای خبرنگار حالا ما و شما به چند نفر رو شاخص میشناسیم ولی بیشتر از این شهدایی که به صورت شاخص هستند تعدادشون خیلی بیشتر هم هست از شهید آبیدی گرفته تو هش سال جنگ تا شهید سارمی و شهید خزایی که اینا یک اسوه یا الگو برای ما و شما باید باشند که ما و شما از اون هدف اصلی یا امون رسالت اصلیمون دور نشین انشاءالله که این شهده بزرگ سرلوه یا همون الگو های ما و شما هستند آقای دکتر هم گفتند که زیاد وارد سوال تخصصی نشیم منم نه اون گپ و گفت رو داشته باشیم اولا آقای دکتر به ما گفته بودن آقای دکتر نیستم <تصفيق> گفته آقای دکتر تهران هستن به خاطر همین سوال آماده نکردیم که بپرس. چی رفته بود امی ما مثلا خب <تصفيق> به <متحدث> خود ما زنگی زدیم جلسیم بخبرنگار مزوری اینکه ای سوالی نکردیم نکرده چون به ما گفته دکتر خدا رو شکر خوبه ولی من هستم اینکه سوال آماد نکرده خیلی خوبه ولی من بودم قرارم بود باشم اصلا با. و تشکر میکنم از شما بابت این دورمی که ترتیب دادین دست شما هم درد نکنه بابت این کارا و امسال اتفاقات خوبی برای روز خبرنگار افتاده بود در سطح کشوری که حالا ما شما تو فضای مجازی نیدیدیم مثلا یه پزشک کماله بود روز خبرنگار رو تطبیه گفت بود و و ادارات مختلفی این کارو انجام داده بودن و یک خواهشم از آی دکتر برینیم که ما یه برنامه گفته بود داریم بر دکتر برنامه استاد چی یه برنامه گفتیگو مهور داریم گفتیگو مهور برنامه استال بعد این دوستان ما در مجموعه برنامه استال خیلی دوست داشتن با دکتر ما یه گفتیگو یا نشستی داشته باشیم تا به امروز ما موفق نشدیم اگه بشه یه تاریخی به ما بدید که ما او روز بیایم خدمت شما و این برنامه رو دفت کنیم انشاءالله کدوم دستانه هستی چون؟ ما آتف جوان هستیم آتف سیستان و بریچستان و ف... هم بازم تشکر می کنم از این گردمایی که ترتیب داده شد با سلام و عرض عدد خدمت. حاضرین در جلسه تشکر میکنم از جناب دکتر که ارساله این برنامه رو دارن این دورمی خبرنگاران و اونرمندان رو رقم میزنن بازم تشکر میکنم و تأکید منم داشتن سیمای چابار یا سیمای منطقه آزاده که واقع نیاز شهر چابار منطقه آزاد و شعرهای مجاوره که بتونن اونرمنده یا خبرگاران کلا استفاده بیننده رو از این فضا بکنن و تشکر میکنم از دعوتتون دو. خانم فارس بسم الله الرحمن الرحیم سلام سلام عرض میکنم خدمت زنوکوردی و همکاران خودم فرزبودنی هستم، پایگاه خبری تحلیلی چهار باقار ها. میکنم این پایگاه ها. من هم تشکر میکنم از شما که این نشست رو گذاشتیم و خبرنگارا ها اومدن از دقدره گفتند. گفتن. خب، حرف خاصی نیست. حالا بیشتر همون بحثه ما چون به عنوان پنها پایگاه خبری تحلیلی غیر دولتی در چهار فعالیت میکنن و تنها انا هستم که مستقل هستم یا حالا چه جور حمایت و این خب حالا داشتیم تا الان ولی خب احساس می کنم یه خورده که مردلات برای شما قرار بگیریم ممنون میشم حالا خب تعاملات خوبی هم داشتم تا الان حالا با ماوبنت ها حالا هر خبری چیزی بوده این من ارتباط گرفتم جواب‌گوام خب تقریباً بودم هم گرفتم دیدم حرف خاصی نیست تشکر می‌کنم خب بسم الله الرحمن الرحیم اولاً که ارزع ادب دارم خدمت تک تک دوستانم و اینکه به به روز خبرنگار رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنم بنده خب به خبرنگار نیستم شاید فعال رسانه مجازی باشم و ابتدا تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردیم در این جلسه و امیدوار هستم که به حال ما بتونم از ظرفیتهای فضای مجازی برای معرفی هرچه بهتر چاوهار زیبا واقعا استفاده بکنیم رسانه که من به حال درونش فعالیت دارم رسانه جدیدی هست بودن نه ماه که ما فعالیت شروع کردیم به نام سلام چاوهار توی مدت نهمایی گذشته ما دو نفر از بلاگرهای بینوملالی غذا رو برای معرفی قضاهای بلوچی دعوت کردیم چابهار مانند آقای مارک وینز از آمریکا بودش، آقای فود رنجر کانادایی بودن که اومدن و ویدیوهایی بالا یک میلیون بار بازی در یوتیوب حاصل به حال ورود این اشخاص به چابه هار بودش. و معرفی حالا قضاهای خوشمزه بلوچی مثل به حال تنروچه مثل شکل پرس و غیره و سعی کردیم که به حال از ظرفیت فضای مجازی در حوزه آسیف های که به حال وجود داره در به حال اشتغالزایی بتونیم استفاده بکنیم حالا تابلوی پیج ما شاید بحث گردشگهی باشه ولی در باطنش دقیقه اصلی ما بحثای بهال اجتماعی هستش بحثای اقتصادی هستش و بحال در بحث کشتی های ترال ما فعالیت را انجام دادیم با همکاری دوستان رسانه در بحث نافچه کنارک متاسفانه اتفاق تلخی بودش سعی کردیم که قهرمانی ماهیگیرانی که حال رفتن به نجات اون عزیزان نظامیمون رو مطرح بکنیم و به حال همه جوری در خدمت شما هستیم خیلی هم خوشحال هستم که تو این جمع افتخار دادید که ما حضور پیدا بکنیم و امیدوارم که فضای مجازی رو رقیب رسانه نبینیم بلکه همیار رسانه ببینیم چون به حال سلایق مختلف هسته شاید یک کسی مثلا تلویزیون میگاه بکنه یک کسی روزنامه بخونه اما در مجموع ما یک هدف مشترک رو فکر کنم باید دنبال بکنیم و اون بحث معرفی هرچی بهتر چابهار هستش، قابلیت های چابهار هستش من همیشه در صحبتان گفتم سرزمین ثروتمند سیستان و بلوچستان و اصلا اعتقادی ندارم که اینجا یه سرزمین محروم هستش بلکه ما باید قابلیت هایی که این سرزمین داره رو به شکل هرچی بهتری معرفی بکنیم که انشالله از برای اشتحال زایی برای برحال موارد بعدی انشالله استفاده بوید تشکر از همینکه خب شما دارید شما ندارید جاخلش باید بستن نمیدونم مثل کرونا کورونا گرشتا یک حسالت مختصری خیلیم آنجای امتراتوریش به قدرت هستیم ماخه بشم نگاه کردیم جاشون خالیه برها رو گفتن مختصر مختصرت سالت کسالت امام مبارک مختصر کسالت کرونا نباشه این روزا دیگه نگرانی کیفیت افراد دلیل دلیلش کرونا باشه که ان شاءالله سلامتی اینشون اگر گرفته این روزا شما بودنگه اگر تن با ساخن صدا بگی زنگی می‌دونم ایشون باشه ما جای آیه سالمی به صورت مجازی دکتر چوتیاس بیاید جواب <تصفح> جواب محدودیت داشته مجازی اپ چیزی زنگ بزنید می‌زنیم شما اجازه وقت بکنم شاید بس یکم خیارو. نه نه فقط خوش. آره بگو بالاخره ما همیشه نوت‌های هایشون رو در میشه که روی بندازید. نمی‌شه؟ نمی‌دونم. یک کارش می‌کنه. یک کار بکنه. أشاکور می‌کنم جناب الهزکی. آیه حسین، آیه امین حسین خانی از ما داشته برآورده کنیم خواسته‌ش. جواد میاریم همین یه خواسته‌رو برآورده کنیم با ها تشکر میکنم از جنوالی از اینکه هم وقت و فرصت را برای عزیزان خبرنگار گذاشتید از همه دوستان به خاطر تلاش و زحمات شبان روزشون در حفظه تلرسامی و این معمولیت حساس و جذاب و هم پر استرس که واقعا کار خیلی سخت و بر برگوشی رو هم در شبکه اجتماعی فعالیت خیلی زیادی دارید اونایی که الان به صورت مکتوب هر حال فعالیت مجموعاً کار خبر رسانی از زحمات همه شما سپاسگزاری میکنه برای رشد و بالندگی جامعه امصافاً زحماتی شما پوشیده نیست، تلاش های شما زحماتی که در تمامی عوضا هم برای خدماتی که داره انجام میشه در وزه چابار ویژه در منطق آزاد و مخصوصاً در موضوع بیماری کرونا که واقعاً هر کدوم از این دوستان های دکتر نقشه به سزایی را ایفاق کردن در جهت اطلاع رسانی جامعه برای یبلگیری است شیی بیماری یا پیشگیری کارا و خدمات خیلی خوبی را انجام دادن است همه این دوستان را تشکر میکنیم و فالیت های سالیانه که این زم بر دوش دار که کهشون موفق باشن و به صورت مستقل و بیطرافانه در جهت انکاس هم مشکلات مردم و هم فالیت هایی که داره انجام میشه از سوی نظام جمهوری اسلامی و خدمات که از روی دولت برای پیشرفت و شاخص های منطقه اتفاق می‌افتند امیدوار هستم که همه دوستان مرفه باشند چون خبرنگار فقط صحبت نکرده ما هم اجازه نداری بیشتر حرف بزنیم و وقت دوستانو بگیریم و از جناب دکترم خواهش میکنیم برای فرما شاد ما ارای بفرمون ما در ارتباط با خانه فرنگ خبر خوششین است ان در هفته دولت خدا به وقت افتتاح در اختیار شما عزیزان و فاضلین فرانگیز که نجا هر میزان حلاق مندی هست و تخصص و را زووی دوستان در اینجا بکنن و احتمالاً تا افتتاح تجهیزاتش میرسه که برای هفته دورات آمادگی ایجاد کردیم تا افتتاحه بشه. خیلی متشکرم از این دوستان خب خیلی متشکرم ممنون سپاسگزارتون هستم. اون اگه خامش کنید تاثیر من بود اولا که خوشحال خدمت دوستان هستیم مجدد و گفتم صحبت نکنید نگفتم کلن هیچی نگید لی راجب مسائل سنفی خود یا بحثایی که در ارتباط با مسائل رسانه در چابال هست واقعا که از بحثای مهم و حساسه باعث توسعه در چابهار امروز همین رسانه است میدونید که رسانه واقعا یه دو دولبه است و میتونه کارکرد های بسیار متزادی رو در شرایط یکسان داشته باشه یعنی شما از یک خبر از یک موضوع میتوانید به ای برداشت و تحلیل بکنید که کاملا تصویری رو وارونه نشون بده و یا باید از هر دو بود چه مثبت چه منفی منطقه همچیزی که عهد ما با دوستان بوده از روزهای خیلی دور در چابهار این بوده که چابهار نقطه مشترک و اتصال همه جریانات سیاسی و گروهی و حزبی در کشور هست به جهد که چابهار امروز اصلی ترین کانون فعالیتی در سواهل مکران هست و همه ما میدونیم که مقام معظم رهبری چه نگاه و چه نظری نسبت به سواحل ما داره بنابراین محل حساب حساب‌های حزبی و جریانی هیچ وقت چابهار نباید قرار بگیره و من تشکر می‌کنم از همه رسانه‌هایی که در رسانه‌هایی که در چابهار حضور داشتند و خوشمندانه این بستر و فضا رو فراهم نکردند که باعث سوء استفاده‌ی ایگرانی بشم و یا اینکه چابهار از برنامه ها و ماموریت های خودش بخواد فاصله بگیره. از این با از همه رسانه هاتش هم کردم کنم. از منتقدینیم که با خلاصای از زیمی نقد کردن هم همینطور اگرچه که حالا بر حال ما وجود داشته در بعضی از مقالات ولی اونقدر کم رنگ و کم بوده که در حال نگاه مثبت و هم حمایت کننده از وظایف و معمولیت های فارق از سازمان و دستگاه خاصی به حال مورد توجه جدی بوده و من واقعا از این بابت تشکر میکنم چند نکته و موضوع مهمی که شاید در این ایام رخ داده و به عنوان اصلی ما بهش برپای یک اعتقاد و مبانی، نظری و برحال چارچوب های سهی بهش پرداختیم که ریشه در یه گذشته خیلی طولانی داره و میتواند در یک دوران گذار به نظر من پنسالهی تصویر متفاوتی رو از چابهار نشون بده و خدمت تعزیزان ارزم کنم یکی بحث طرح توسعه منطقه بود که خب یا پرونده باز چندین ساله ای بود شاید بیش از یک دهه این پرونده در کش و دولت و مجلس و حال اما و اگرها اونگاه های داخلی و بیرونی و همه اینها قرار داشت خوشبختانه با همفزایی و تعاملی که در سطح دولت مردم و مجلس قرار گرفت این تربیه یک در قانون تبدیل شد و البته که نگرانی ها الان بیشتر شده انتظار این هست که حتما در یک قاعده مشخصی به نفع در واقع اقتصادی کشور و به نفع مردم منطقه بتونه از این قامون بتونیم هد اکثر بهره رو بگیریم نکته دوم موضوع فرودگاه چوا بود که خب حال لطف خدا من تونستیم در این دوره شروع عملیات اجرایش رو داشته باشیم و الان هم نسبتاً با شرایط خوب و قابل قبولی در حال در واقع ساخت و ساز هست و امیدواریم در برنامه زمانبندی 18 ماهیی که قرارداد بستیم بتونیم به پایان برسونی بشن. در حوزه زیرساخت های گردشگری و اصولاً پروژه های عمرانی هم خوشبختانه تحرک خوبیش صورت گرفته و در حال حاضر بیش از 800 میلیارد. تومن کار عمرانی در منطقه در حال انجام هست که در سابقه خود منطقه بر حال حجم خیلی زیادی است و خروجی این پروژه ها که عموماً هم پروژهای قابلیت دار یا استنها پروژه‌های توسعه هستند، آثار خیلی خوبی رو انشاءالله در تصویر و در بر حال آینده منطقه خواهد گذاشت. دکتر فیزیکی ببینید بر اساس برنامه زمان بندی در ماه گذشته یعنی ما یازده 4 اگر اشتباه نکنم قرارداد رو ابلاغ کردیم. از اون مدت از اون زمان به مدت یک ماه تقریبا تا و پنج روز تجهیز کارگاه هست. اما ویژگی این پروژه این بوده که از هم روز اول کار عمرانی رو هم شروع کردند در بخش باند تقریبا ما 6-7 درصد الان پیشرفت فیزیکی داریم خود تجیز کارگاه تموم بشه سرجم پروژه 5 درصد در موقع پیشرفت فیزیکی است تا سرعت در واقع تجیز کارگاه و وارد شدن به فازهای عملیاتی و اجاری پروژه اونقدری بالا هست که انتظار داریم انشاءالله در آینده نزدیک رشد در درصد پیشرفت فیزیکی های خیلی بهتری رو تجربه بکنیم الان دیوار حفاظتی و بعد چون پیمانکار های ما هم پیمانکار زیادی هستن یعنی یک پیمانکار کار نین میکنه پیمانکار همین الان چهار تا پیمانکار در منطقه در سایت مستقر هست باند رو یک پیمانکار کار میکنه تاکسی و اپرون روی پیمانکار کار میکنه جاده حفاظتی روی پیمانکاری هست. جمعوری روی سطحی روی پیمانکاری هست. برای تلویزیون پیمانکار دیگری هست. برای اینکه بتونیم مدیریت زمان بکنیم نگرانی که عموماً در این نوع پروژه ها وجود داره بحث تمیز منابه هست. خوشبختانه برنامه دیزی و پیشبینی لازم برای منابه مورد نیازاتی این پروژه صورت گرفته و انشالله امیدواریم که این پروژه هم باعث تحول در بر حال روند گردشگری بشه و هم در سایر فعالیت ها و تعمیر نیازهای عمومی مردم که ازش منتفع خواهند بود خدمت شما عرض بکنم که روستای تیس تا سال گذشته تنها روستای منطقه آزاد بود در به تناسی 22 روستاده در داخل منطقه آزاد هست اونطور به دلیل باز کم توجهی و ابهام در مدیریت و حاکمیت این روستا تا دو سال قبل متاسفانه کار زیادی انجام نشده بود با تفاهمی که با بنیاد مسکن داشتیم خوشبختانه الان روند در واقع سنددار دار کردن منازل مردم و همینطور باسازی و بهسازی روستا شبکه آب شبکه برق بهسازی معابر پیشرفت نسبتا خوبی داره اگرچه کند هست به دلیل اینکه خب بر حال میدونید این نوع کارها در باافت هایی که مردم حضور دارن همیشه به کندی پیش میره و تعارضات اجتماعی که وجود داره تااملاتی که باید با مردم برقرار بشه. اینها همیشه باعث کندی پروژه میشه اما خوشبختانه در حال حاضر مردم روستایی تیز همکاری بسیار بسیار خوبی دارن و اگر با همین در واقع روند بتونیم تامل همکاری خصوصا معتمدین روستا و مردم رو داشته باشیم ما امیدواریم که بزدودی چهره این روستا رو هم تغییر بدیم خوشبختانه این ورود باعث شد که ما یک مدل و پایلوتی رو برای سایر روستا یعنی سی در روستای دیگری که در تره جدید در داخل منطقه قرار می گیرن داشته باشیم همین الان برنامه ها و در واقع های لازم رو بر اساس این تجربه تا کمک و همکاری خود بنیاد مسکن انجام دادیم تلاش خواهیم کرد که انشالله چهره متفاوتی رو از این روستاها از همین ابتدا در برنامه‌های خودمون ببینیم و اون چیزی که سطح رفاه عمومی مردم و حداقل امکانات هست رو در برنامه‌ها به گونه‌ای ببینیم که محیط شهری و روستایی ما محیط متفاوتی از اون که امروز شاهدش هستیم باشه همچنان که در کنار ما بودید انتظار و توقع ما این هست که انشاءالله در آینده هم همینطور پیش ببریم تجربه کردیم در این سالها که با همکاری و با همراهی می شود اتفاقهای خوبی رو به نفع مردم به نفع کشور و به نفع نظام رقم زد و چابهار هار پایلوت و آلگوی خوبی از این باب بوده من از این باب از همه شما عزیزان تشکر و قدردانی دارم اگرچه که همچنان معتقدم که روحیه انتقاد و در واقع اون معموریت اصلی در واقع حرفی خودتون رو داشته باشید اما در فضایی که شایسته و مناسب هست حتما بین نقد و تخریب و در واقع نقد ناسهانه و نقدی که از باب یک جریان و یک سوه جریان بهتره بگم تا یک جریان هست تفاوت قائل بودید همچنان این تفاوت و تمیز رو قائل باشید انشاءالله که سرولند و پیروز و موفق باشید در ارتباط با این سوالاتی هم که حالا مند یکی بحث بازدیدی بود از آقای عزیمی درخواست کرده چشم قربان میایم میار جلن می بینیم. در ارتباط می که منطقه آزاد در رسانه چیکار کرده هم اساسا رسانه نیازی نداره که جایی براش کسی کاری بکنه رسانه خودش انقدر توان و قدرت داره که به هر حال حضورش همه جا هست انصافا از این با شاید ما کاری واقعا دستمون بر نمیاد که براشون انجام بدیم منتها این اتاق خبری رو که فضایی رو که برای خبرنگاران پیش شده با یوسفی که دیگه نام شدیم آقای چاکرزی شاد تو فرانسه یه فضایی بتونه بده با بچهای خبرنگاری یه پاتوقی براشون باشه حالا اونجا با هر عنوانی که دوست دارین فن... بنظرم چون آقای یوسفی هم مشکلش همین جا بودی حالا اینجا رو اگر بتونم جاش رو آقای چاکرزی میدم تج리즈م آقای یوسفی میکنه انشالله تو هفته دولت شما بالاخره این آخرین قول ما باشه دیگه دوباره سال بعد قول این رو ندیم قول جدیدتری بهتون بدیم به سال بعد یعنی سازمان قول دیگه ای بهتون بده انشالله این فضا رو براتون فرهم خواهد کرد صدا سیما خیلی حضورش مهم های خدید در منطقه و مؤثرم بوده من جا داره از زحمات های قردستانی و همکارانشون تشکر بکنم در همه شرایط هر وقتی برنامه بوده و ضرورت و نیاز پوشش خبری مناسب از طرف صدا سیمای استان صورت گرفته یک تلاش ها و برنامه ریزی هم انجام شده که حال بتونیم اینجا بستر و فضایی رو فراهم بکنیم که حضور دائمی داشته باشه صدا سیمایی موضوعاتی رو هم با صدا سیمایی کشور خود آجنابایی کردستانی دنبال کردن روابط و مناسبات ما مناسبات خیلی خوبی هست یه این بروکراسی ها و پیگیری های اداری ممکنه است جوان مختلف با تاخیر کار پیشرفته بینید انشالله امیدواریم نگاه ما مثبت هست حتما هم تلاش خواهیم کرد که زودترین بستر و فضا فراهم بشه فرهنگسره رو هاج آقا گفتم به زودی الله هفته دولت تو برنامه پروژای افتتاحی هست حاطف سیستان و بلوچستان هم انشاءالله بفتگوی رو آقای یوسفی باید جزش رو به ما بده دیگه انشاءالله برنامه روزی میکنن ما خدمت دوستان باشیم سرکار خانم هم کارن که حمایت ما به حمایت شما این روزها نیاز داریم همیشه بودیم و من تشکر می کنم البته مدتی هست دیگه اون حملات شدید از چهار نیست به نظر امروز تازه دلیلش رو فهمیدم سکانداریش رو به یه خانه می دادم قبلا بودم ولی خب یه پرزه کم تر نیستم بس این هم من, من تعجب کردم واقعا چطوری مدتی هست خبری نیست خلاص کنایه ها بود زد و خورده های سنگین چارباران هست شده دلیلش رو امروز متوجه شدیم برای شما عرض توفیق داریم حتما نگاه نقادانه چارباران رو ما واقعا دوست داریم میپسندیم هم ما کردم همون نگاه نقد ناسهانه این کلمه جدیدی بود امروز از آقای عزیبی یاد گرفتم تکرار میکنم یادم نره نقد ناسهانه منم ادادی هم کشم نقد ناسهانه کلمه خوبی بود حتما باشد و کمک بکنیم که انشاءالله عرض کردم آنچه که عنوان مهور و اساس و اشتراک همه ما هست یک رضایت مردم و خدمته به مردم دو مراقبت از منافع ملی و اهداف نظام در این منطقه هست این دوتا مهور عنوان خطوط قرمز ما با عرض با گروه و جامعه خبرنگاران و اصحاب رسانه اصحاب رسانه خبرنگار خوبی مفهومی متفاوت از اصحاب رسانه است منطقه همه ی عزیزان چه در فضای منجازی چه در سایت هایی که وجود دارن در واقع پایگاه های خبری که هستن به عنوان خبرنگار به عنوان عکاس به عنوان فعال در این حوزه برای کمک به این که به نظر من اعضای این خانواده همه کسانی هستند که کمک میکنن آگاهی به جامعه داده بشه بخشی حال ممکنه که کمتر دیده بشن ولی همه اینها اعضای این خانواده هستن و ما همه رو قدر میدونیم اجر مینهیم و حتما سپاسگزار همه عزیزان خواهیم بود انشالله که پیروز و سربلند و کاملا باشید من تشکر میکنم از شمای دفترون نکته ای که وجود داره رو بحث اطلاع رسانی با تعامل با خبرنگاران ایشون در فشورده ترین حالت ممکن در فشورده ترین جلساتی که داشته باشن اما اون وقت و نگاه رو به حوزه اطلاع رسانی و دوستان خبرنگار دارن هرانچه کوتاهی هست مغسل بنده هستم باعث بحث فضا خب میاهی کسیری محدودیت‌هایی هایی داشتیم بخدار شکر با دستور جنبای دکتر انشالله به زودی اون فضا رو هم در اختیار می‌ذاریم. فضایی باشد برای تبادل دیدگاه‌ها دیدگاه ها و همفکری. اون دفتر خبر جنوب و استان که متعلق به شما خواهد بود انشالله آن رو هم در هفته دولت خواهیم داشت نکات دیگر حالا من هستم خیلی من سوالی داشتم جمع دوشو. هایا مسئولیتی هم در حوضی رسانه با منطقه آزاد هست؟ شما الان در کیش شبکه داره به حساب منطقه آزاد و در منطق آزاد هایا هست؟ در منطقه آزاد چه؟ و از زمان شروع عملیات سی و دو روستا انشاءالا که هست؟ ببینید رجب سی و دو روستا که همین الان با بودان مسکن توافق کردیم شروع کردن اینه الان در مطالعاتش رو انجام میدن ترهای هادی بازنگری میشه و در توافقاتی که در آن تنظیم داریم از هر زمانی که خدماتی که در گذشته مسئولیت در واقع سرزمین اصلی بوده و دستگاه متولد اونجا انجام میدادن رو الان منطقه با همکاری و مشارکت بنیاد مسکن استارتش رو زدیم از ابتدای امسان بله بله مطالعات و بازنگری ترهای هادی رستاها این روستاها همین الان شروع شده است در اکتباط با مسئولیت، بله ما همه در مقابل رسانه مسئولیم و باید پاسخ با گو باشیم اما اینکه الان ما در واقع متعهدی در منطقه برای رسانه داشته باشیم از گذشته نه، وجود نداره واقعیتش کیش یه شبکه اختصاصی رو در واقع اونجا برای خودش داره ما هم در دو سال گذشته تلاش کردیم توافقات عبریهی هم صورت گرفته که یک شبکه یه مرکز صدا و سیمایی در شابه بشه. توافقات زمینی رو هم برای بعضی از تعهدات انجام دادیم تا هنوز عملیاتی نشده هر تا با ایرنا تفاهم ایرنا ببینید 14-15 ساله که تفاهم داره و به عنوان یک رسانه در واقع دولت و دولتی استلاحا از قبل تفاهمی رو داشتن و پوشش رو میدادن همون همچنان هست من صحبت دوستمون بیشتر فکر کنم موضوع مسئولیت درون سازمانی در ارتباط با اینکه یعنی مثلا مثل کیش که سدا سیما داره چابه یا مرکز خودش داشته باشه ما خودمون نداریم اونم که تو کیش هست مال سدا سیما است، یه سری زیر ساخت هایی رو براش در واقع منتظر آزادی کشورا هم کرده ما هم صحبتایی کردیم قرار شده که ماش شدیدم که اعتباری هم و به بس... از طرف منتظر آزادی کشور به شبکه داده بله کمک می‌کنم ما هم همین یعنی الان برنامه رو با صدا سیما استان داریم برنامه مشارکتی داریم حمایتی داریم این کارها رو داریم انجام میدیم صدا و سیما هستش یا نه بله بر هست. بله بله برای صدا و سیما هست بله بر رسانه... برای بس... بر رسانه خصوصی و دیگر نه ما چیزی الان در حال حاضر ندادیم فقط ایرنا با عنوان یکی از که این همون مصادقه نه همونه تا ما زمانش گذشته بوده تمدید شده. چیز جدیدی نیست امکاناتی رو از گذشته در اختیارشون بوده همونها رو تفاهم کردیم در اختیارشون بمونه و همینطور در ارتباط با برنامه‌هایی که اونها در واقع مقدارش تعهدات ایرنا رو نسبت به چاووها بیشتر کردیم در این تفاهم جدید ایسری در واقع مشخصا روی که در واقع محورهای خاصی رو گفتیم که توی برنامه‌هاشون ببینن ولی به لحاظ محتوا و تعهدات سازمان تغییر چیز جدیدی بهش اضافه نشد در ارتباط با صداوسیما مرخص کردم ما همین الان با صداوسیما استان تفاهم همکاری و کار مشترک داریم. تمایت هایی رو هم به حال به اقتضای پروژه ها انجام میدیم. حضورش خیلی کم فهمیه تو. به نسبت در مقایسه با بقیه شهرها این طور نیست. شما در با مقایسه با جاهای دیگری که مرکز سداسیما توش نیست، حتی مناطق آزاد دیگه اگر مرور بکنید، به نظر من سداسیما استان در چاوار حضور مناسب و قابل دفاعی داره. آقای م... کردستانی هم توافق کردیم که یه فضایی رو ما در همین یعنی الان قبل از این که سداسی ما ایجاد بشه یه اتاق خبر رو یا در واقع مرکز خبر رو ایجاد بکنیم سر عرض کردم فضا و حال امکاناتی که داره فراهم میشه توی بروکراسی های اداری هست. انشاءالا اونم تلاش میکنیم به بومید خدا در پایان این غرب به نتیجه برسیم. یکی از کشاوردان بسیار خوب و طوانمند اصفانی که مرچسران رو جاهدادی در انتقاض دارد برای پروشت میبای اصفایی و کاملا یه جورایی یعنی نادیده و خیلی خاموش این کرد. خیلی دوستاشتیم این کار خیلی بشه و کلی یک کشاوردان جاشون اینجا باشه و خیلی آدم خیلی خوبی رو شما مشقط کردید امیدوارم در یعنی فضای سرد شهرستان و فضای فرودگاه بتونیم از الان با آقای فرزادی همچنین هرکتهایی رو بزنیم تو واقعا یک فروشتنده یک میوای اصطبایی خیلی خوبیه فرزادی دکتر، جواد نفرست به تو تلفونی میاده نسیم در جران اتخال یاسد جمهوری هست دیگه شما؟ یارالله زن ها کی قرازی هستم جوی گزیمای کارزیاسان. بعد نه دی می‌باد کام جویایی روخانی هست. بعد سیاسی هم. کالی باف. هست؟ بعد. بعد. اون انتخابی هست؟ اونی کام می‌باد کندیم. چی؟ چی؟ همیشه می‌بیاد خانم چهارم سالی داریم خودمون فارسی می‌دونیم. من کم و فارسی هم سیبوم هست. بعد از الو غایت شمارش شده سلام، آقای صادقی، روح آقای صادقی، سلام سلام، دکتر، <تصفح> خوب شما؟ متشکر، این اصحاب رسانه امروز گفتند این جلسه بدون آقای صادقی برای ما لطفی نداره این اصحاب رسانه لطف دارند و بید جای زمان امپراتوریشونه یه پروژه‌تون نیسته نیست. شما خودتون دانستین گفتی. خیلی دکتر بیگی چی بی نفع میشه نداشته بی نفع داریش نه. اااا حالا امپراتور نیست خیلی دورستان زمان شما یه فضار و خیلی سیاسیش کردید و انتخابات ریاست جمهوری را داشتی و کاندیدا الان الان بعدی که حالا بندگان خدا چی نمیگن ولی آیا عظیمی جدی جدی باور شده و الان آسان انجام الاخره ادعای امپراتوری و ریاستت جمهوری اینا داره اینا تکلیفش چیه ما چی کار کنیم؟ دست همه رو رو کن که لاقل ما اگر اکسی با اینا گرفتیم اکثر منتشر نکنیم. اینا همه مثک سوپیشی ندارم. اکسی ایپیان میخواد بیتر کام میتونیم. آقای دپتر همه‌شون مشروب هست. پس این امپراتوری بلوچستان احتمالاً بخاطر همین نیومده تو جلسه. در اعتراض به این ادمای معلوم معلوم‌الحال. نه <تصفح> صحب <تصفح> من بهش زنگ زنگ من برای چاده و می‌بار به کورونا اصلاً الان لو ندادی، اصلاً صدای شما رو کسی نشینید ولی, ولی البته اگه یادت باشه، قبلا آقای که رستم یک ویژگی دیگری داشت که در واقع با یه اتصالاتی به ارواح متصل بود شا ارواح دارن این کار رو میکنن براش آخر جزیان خیال خیال آخر همونجا رو میکروفون با میکروفون تو بزنید بسن زدن خب بایگاه عظیمی و کریم داره خبری تحریقی یک داره رو داره میگونم مشکلات مشکل به سر کل شیلا واسه الان دارم جاوا جاوا جواد، جواد جواد که به نفت من میری کنارت انتخال گیاسته جمهوری؟ که؟ تو به نفت من که میری کنارت انتخال گیاسته جمهوری؟ این نمیده این کی اعتراض کرده کرروگی اعتراض کرده گفته من من نیقه خوابیدم اونکات رای من رفته این از جواد جان اگر نکته ای مطلب خاصی داری بگو اگر نه ما وقت جلسه مون خیلی گذشته خیلی ممنون که همراهی کردی دوستان رو در جلسه. جمله آخر از مادر عروس چیزی نداری بگی؟ ما, آره حسن ما اون از دروسی گذشته که ما از گریه نشنده دیگه است که موفق سالم و تندرست باشی هر دوستان یاد شما بودن به فکر شما بودن تو این جلسه تنها درخواستی که ما گفتیم امروز شما هرچی درخواست شخصی دارید از ما بکنید تنها درخواست شدیم بودن که آقا جواد رو هم بیارید تو جلسه ما صداشو هر حال. معلومه که محبوبیت هنوز هست علارغم این نقدها و بحثای بحثایی که داری خلاصه همه دوست دارن. روزانه بنده باشی ممنون خدا خدا نگهدارت خدا حفظت خدا حفظت. اجازه، اجازهریم چون تشکر می‌کنم. خب به رسم ادب هم واقعا خدمت دوستان هستیم بابت زحماتشون. پای کریم دادی. آیا عظیمی آیه عظیمی آیه خدید از اونجا به ترکی پس در انتخابی واسه نه نه نه من ندیدم پس میپرسم اتفاق بذارم ممنونم آیه جدگاه انشاءالله دیگه بود با دفتای خبر گفت جدگاه ما ای شفی. ای از خانم فهمتید آیا آز به نمایندگی حوزه کنارک خانم خانم فهمتید خانم مدتی نوازش نشدیم ما نریانا نکسوز بری بزنی همین بزنید بریانا باریت شاهده محفظ باید. دست شما در نکنه دوستان خیلی معلوم. سوال ما موسیقی واسه